اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباعثمون از تبول معصومین بحث مسکرات مز کننده ها چه شیمیایی چه طبیعی چه جامد چه مایه این مسکرات خوردنش حرامه هم تو صفحه 154 و 155 و 156 تبول معصومین هست هم در صفحه 367 همین کتاب طب معصومین هست. بعد گفتیم که حدثنا الحسین ابن احمد خارج از کتاب بود حدیث. قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن خالد قال و روایتی که حاشیه زدن می‌خونه گفتم به عليه السلام عن النبي صلى الله عليه ان من شرب الخمره لم تحسب صلاته کسی که شراب مسکر میخوره تا 40 روز نمازاش قبول نیست که چه وقت آب بکشه وقتی که از مسجد درآمد نماز بخونه اما از نظر اخلاقی و عرفانی تا چهر روز نمازش قبول نیست حضرت فرمود صدقو فقلت و کیف لا تحسب صلاتو اربعین صباحا چرا ان نظر اخلاقی عرفانی حتی حیث پزشکی تو بحث چرا مؤمنات تا چهر روز نمازش قبول نمیشه گرچه ان نظر فقهی که از آب کشید و از سکر درآمد نماز رو باید بخونه. مثلا که چه مسلمان هم چی نمی نمیکنه حالا اگر زد براید که قیرتیگری و عدا یهود و نصارا درابط لا اقل من ذالک ولا اکثر نه کمتر از چه روز نه بیشتر از چه روز قال عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى قدر خلق الإنسان فصير نطفة أربعين يوما. سه تشکیل نطفه شهر روز زمان میبره ثم نقلها فصيرها علقتن أربعين يوما. انتقال صحیح از واجن و بعد رحم و بعد رحمیه. بعد لقاحی که پشت شیپور فالوب، لوله فالوب هست. بعد دوباره برگرده بیاد جدار رحم لازم گزینی کنه. بعد به تساوی هندسی روش کنه این سلول توک بشه علقه اینم چه روز زمان میبرد. ثم نقل آه فسیل آه بعد تا وقتی که حالت قزوئفی آبکی بشه. اینم هم با روز زمان میبرد. و ها کذا تا نه ما انتظار که تنوش تو مباحثه خودم اثاشره بلخمره هنگامی که یک شراب خاری این نوشیدنی مسکر بخوره هم حرامه هم اثرش منفی روی بدن اثرش سوء روی بدن حتی قسمت خروجی دفع سموم که بس بحث دفع آمونیاک و آرسینیک و او روه و کراتین خونه از طریق مجاری ادراری که قبلش تجمع در کیسه مصانه است و ها کذا اذا شرب الخمره بقیت فی مصانتیهی علا قدر ما خلق منه تا چه روز اثر سویش در مصانه باقی میمونه و کذالک یجتمعو قضاؤوهو و اکلوهو و شربوهو حتی اگر شامیدنی های مثبت حلال طیب تااهرم بخوره اثر باز اثر از تو بدن تا چه روز هست. مک که اجتم و و, اكله و شربه مثانته این هم دو تا سند داره، یکی العلل و شرایع جلد دو صفحه سر حدیث یک یکی امسند الامام الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 657 مسند امام رضا علیه السلام جلد دو صفحه 357 من فراموش کرده بودم قبلا ترجمه کنم الان توضیح با ترجمه دادم رسیدیم مؤمنا به این روایات که کلید کلید هر شر و فساد فردی و اجتماعی زیر سر نوشیدنی های مسکره لذا تو روایات شیعه و اهل تصانون روایات داریم که مسکر مسکننده تمامی پلیدی ها و گناه ها توش جمعه سلامت و مادر همه خباست های فردی و اجتماعی. چرا؟ چون خبس باطنی میاره سپس خباست در محیط خارجی ازش سر میزن مثلا میشه شرور مسلح لات آسیب رسان بقی الخمر جمع الاسمه و ام الخبائف و مفتاح الشر روایات دیگه تارسلیم صفحه سر پنج و پن عن النبي وسط صفحه عن النبي صلی الله علیه و علی و سلم لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها و ومشتريها و, و, و, و, و, و ثمنها وحاملها حاملها و المحمولت الیه در سیدیه نورسه مرکز مطالعات کامپیتری قوم جامال احادیست این روایت مومنان 23 بار اومده تو کتاب های مختلف پیغمبر اکرم فرمودن که خدای متعال لعنت کرده شراب مسکر رو حالا یکیشم شراب مسکر از انگور رو از خرما داریم چیزهای دیگه داریم اینا شراب مسکر رو. حتی تو روایت داریم رسول الله لعنت کرد و بقیه افراد خوب یعنی از رحمت خدا به دور آسیب رسان به فرد و اجتماعه و همچنین کسی که آب انگور بگیره به این نیت که شراب مسکر درست کنه اینم ملعونه یا کسی که درخت انگور قرض کنه به کاره به این نیت که انگوراش رو اوست کارخانه شراب سازی بفرسته مسکرسازی اینم خدا لعنت کرده قارس رو کسی که شراب بخوره از روی اختیار اینم خدا لعنتش کرد تا چه برسه به مدمن الخمر که قدر و ملعون بودنه یعنی از رحمت خدا به دوره کسی که بیاد سقایی کنه این نوشیدنی حرام رو به دست دیگران بده مثلا که بخورم سقایت کنه وقف این هم ساقی شرابم چی عموجون حرامه شراب مسکر کسی که فروشنده مسکرات باشه چه جامد چه مایع چه طبیعی چه شیمیایی فروشنده مسکرات فعلش حرامه ملعون هست مالک پولی که میگیره از مشتری نیست. اکل مال به باطل حرامه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فمشتری ها کسی که خریدار مسکرات اونم فعل حرام انجام میده. مالک حرام آدم نمیشه. مخصوصا مالک نجس. اینجا الان نجسه. اونم نجس العین. مسکر آدم مسلمان مالک نمیشه ممکنه ملکش باشه اما تو بحث خرید و فروش مالک نمیشه و آکله ثمنه ها مگر نیتش از اول تبدیل به احسن باشه مثلا همه شراب های شهر را جمع کرده که باشه سرکه درست کن. از اول نیتش سرکه درست کردن حالا اینجا یجوز چون میخواد تبدیل به احسنش کنه از افسد و فساد در بیاره تبدیل به احسن کنه فساد فهم که سرکه طبیعی. ما اشکال نداره اما اینکه بخواد خود شراب مسکر رو بخره که بخوره یا در اختیار دیگران بذاره فعلن حرامون بعد فعلا حرام نفس خرید فروشش حرامه مصرفش هم حرامه خریدش هم حرامه ساقی هم باشه حرامه و آکل ثمنه ها چون اکل مال به باطله حرامه نهیم ظهور در حرمت داره چون قرینه برد کراهت نداریم لا تأکلو انوالکم بینکم بالباطر و حرمت عليكم خب این همچیه خبائثه دیگه تو یاد داریم که ام الخبائث یا مثلا اینم الخمر و المیسر و من عمل شیطان فشتنه بود آیه تصریح کرده اینم های حصم آورده اینم چیه مومنان پس آکل هم ملعونه و همچنین کارش کاره حرامه چون اکل مال به باطل کسی که حامله باربره اذا رو پشتش باربری میکنه یا تو کارتون تو دستش میگیره یا تو فرغون مثلا یا مثلا واند داره و نیسان داره و کامیون داره از یه حرف به هر تعتیبی خب حامل ها همینا ملعونن که جابجایی میکنن مسکرات رو و در اختیار مردم قرار میده این محملا محموله حرامه محموله حرام رو به دست افراد بده که مرتکب بشه بشن اینم حرام تمام این موارد همه چیه ده طایفه همه اینا چیام ملعونند روایت بعدی عن النبي صلى الله عليه و آله و وسلم بنا بر هر چهار نسخه این روایت یج تمعو نداره پس کتاب که چاپخونه یج نوشته حواس چاپخونه نبود اینجا باید لا تجمعو با تا لا تجمعو بنا بر نسخه بحار یا لا یجمعو بنا سه نسخه دیگر که آدرساش میگن پس این کتابو اینجا شد اصلاح کنید لا تجمع یا لا يجمعو الخمر و ایمانو فی جوفه او قلب رجلن ابدا بعضی نسخه مثل نسخه مستدرک امرن بنابرای نسخه دیگر رجلن جمع نمیگردد شراب مسکر و ایمان بالفعل آدمی در جوف انسانی در اندرون بدن یا تو مرکز فکر و اندیشه صحیح و عقل فعال کاربردی در اندرون آدمی یا قلب آدمی یا هر فردی از افراد انسانی؟ هیچگاه یعنی این قضیه قضیه مستمره است. دائمه مطلقه که ایمان بلفل و شراب مسکر یک جا جمع نمیشه چون این تا صده همه باور صحیح ضد شراب مسکر، شراب مسکر که بیاد باورهای سهی رو همه رو بمیبره چون عقلو رو زایل میکنه فکر خوب متمرکز رو زایل میکنه توضیحات بیشترش میدم از خود خارجیه یکم صرف کنید یکم لیه بخونم امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودم و از حضرت سوال شد کسایی که زیاد روی در گوش خاری میکنم کنم زیاد روی در گوش خوردن و کمتر از سه روز باشه به قرینه روایاتی که قبلا خوندیم افلامش معهود ذهنی و ذکری هر دو مش طبق مختلفی که هست ان له ذراوته ای تعودم کذراوته الْخَمْرِ یک مستی و یک خشونت و یک قساوت قلب مستی و خشونت و قلب برای گوشخاری زیاد هست که از سه روز کمتر و زیاد و هر روز مثلا میخوره مثل خشونت و مستی و قصاوتی که از خمر هست از شراب مسکر هست قال الباقر و علیه السلام حالا فرقش چیه؟ در مسکر هم حرام خوردنش هم نجس اما در گوش خوردن جایز کمتر از سه روز مکروه هر روز بخوره چند نوبت کراد شدید تو رو چی گفتن؟ پس حکم فقه یک کم با هم فرق میکنه ولی اثر سوش در همه جوانب نه در چند مورد شبیه همه که توضیح دادم این روایت مومن صفحه روایت قبلی که گفتم چهار تا سند داره سنداش یکی بهار جلد هفت صفحه سال پنجه و دو که چاپ اسلامی است جلد هفت صفحه سال پنجه دو, پنج دو چاپ بیروتی جدید جامل اخبار لشعیری صفحه سال و مستدرک جلد هیفده صفحه پنجه و شیش مستدرک جلد هیفده صفحه پنج و حدیث شیش خط تیره بیس هزار و, و حدیث بیس هزار و, و روایت بعدی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام بعضی از اثرات سوء مصرف مسکرات رو بیان می خیلی قشنگ قال الباقر علیه السلام عن سبب تحریم الخمر به چه سبب شراب مسکر خوردنش حرام شده حضرت فرمودند و اما الخمر فانه حرمه له فعله و فساده اما شراب مسکر خوردن تحقیقا خداوند متعال حرام کرده شرابخواری را به خاطر فعل شنی ای که از شخص سر می‌زنه خودشو زایع می‌کنه، خراب می‌کنه. فساد شخصی میاره. از تزلزل اندیشه، از خلجانات ذهنی از دست دادن فکر خوب و تمرکز فکر از دست دادن عقل فعال کار بردی و بکارگیری عقل به درستی از زایع شدن نسل شخص و ایجاد کودک ناقص الخلقه همجه ادامه بده چند تا نقطه بزار فقیه بعد توضیح میدم حاشی که برای این کتاب ها هم فساد اجتماعی میاره بحث اعمال خشونت بیجا. بحث زنا مخصوصا زنای با محارن حالا این حضرت هم بعد می فهمه قال الباقر علیه السلام این مدمن الخمره، این واژه مضاف مضاف علی مدمن الخمره، در سیدی جامل احادیث نور که تقریبا 800 کتابه عنوان کتابه دیویست و بار اومده حالا دیگه همه روایت ها رو نگاه کنید دیگه دیویست و بار این مدمن الخمر اومده دیگه اونها رو تحقیق کنیم بعد حضرت میفرماید. کسانی کسانه که الکولیسمن سوء مصرف حتی پیش خود شرابخارا رسول عمو میگه اینهایی که سوء مصرف دارن و الکولیسمن مدمن الخمر معتاده به شرابخاری یک کعبده و این افراد مثلا این خودکار از بود من الخمر این افراد اولاً بتپرسته چرا چون معبودش این مسکره این مایه مسکر یا جامده مسکره بتپرستی اقسامی است اینم یک قسمه و تورثه ارتعاشه، یکی از اصلات وضعی سوه مدمن الخمر بودن چیه؟ رحشه یعنی لرزش غیر اختیاری اوزو یا اندام لرزش غیر اختیاری اوزو یا اندام سوم و تهدم و او از بینبرنده مروعت انسانیه از بینبرنده مروعت انساني الرابع وتحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يعمن اذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقله ميجي كسي ك شراب خاری میکنه تو عالم مستیش خب بیعقلی و بیفکریه دیگه جس جسارت پیدا میکنه بیباکانه متحورانه که برخواسته از بیعقلیه بر محارم خودش مثلا پدر مادر برادر عمه خاله دایی عمو مادر بزرگ آقا بزرگ دخترش، پسرش، عروسش خب چه قلطی میکنه این شراب خاره؟ منصف که دما یک مرتبه چاقو برمیداره تیق مکدباری برمیداره دشنه برمیداره میتونه قیمه قیمه میکنه فامیلاش اینقدر از این نمونه ها داریم همه جای دنیا و رکوب زنا زنا میکنه در حال مستی نه تنها با غریبه ها با محارمش یعنی زنایی با محارم میکنه همینه که شمارده ما حتی لا یعمنو بگونه این که افراد اجتماعی از جمله خانو و خانواده و عشیره و فامیلا در ایمنی نیستن هنگامی که شخص در حالت مستیه انیفه به علا حرمه میجهه برای زنا کردن بر محارمش یعنی با دختر با عروسش با مادر با عمه، با خاله با مادر بزرگ جمعش زنای با محارم قتلش واجبه و هوا لا یعقلو ذالکه تو تو کتاب فروع کافی جلد هشت صفحه 243 اینجا یک ذالکه داره بنابرای نسخه کافی و هوا لا یعقلو ذالکه این شخص مسلای عقل نمیدونه که داره چه غلطایی انجام میده چه آسیب های فردی و اجتماعی مرتکب میشه ول خمرو لا يزداد و بر نسخه کافی شاربوها الا کل سوءن بنا بر نسخه کافی تا نسخه دیگه لا تزيدو شاربوها الا كل شر همش افزایش میده کسی که شراب مسکر میخوره افزایش میده او رو بر انجام بدی و انجام شر به خودش و به دیگران پس خود آزاری هم داره دیگر آزاری هم داره حالا مؤمنات تو کتاب های مثل کتاب جامع سلامت خانواده چاپ ثومش یک تعلیف اسکات لیتین دنیس کورتیس هاگ اسمیت جورج بارتلی ویکتور تراستک در ترجمه و توضیح هم هست زیر نظر توضیح های مختصم زیر نظر 17 تن از اساتید دانشگاهی علوم پزشکی تهران ایران و شهید بهشتی ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر آزاده بستانی دکتر علیرضا عزیز آهاری دکتر محمد رزاییان جلد یک صفحه هشتاد و هشت جلد یک صفحه هشتاد و هشت. باز اینجا مطالبی بیان شد یکی از مطالبی که بیان شده اینه که سوء مصرف الکل و اعتیاد به اون یعنی الکلیسم البته سوء مصرف الکل و اتیاد به الکلیز یکی از معضلات جوامع غربیه تو جوامع اسلامی خیلی کمه ولی دشمن داره دامن میزنه و پول خرج میکنه برای ترویج شرابخوااری و و شبنشینی های مبتظر این حرف و دانسینگ و کابارو اینا گرده همایی های سو اما مطالعه این قسمت ها خوبه برای افرادی که اهل تحقیق و تجویش و مطالعه هستن از صفحه هشتاد و هشت یک کتاب جامعه سلامت خانواده تا صفحه نرد چار حالا اینا مؤمن ها همه مطالعه بشه خوبه من حاشی ها میگم یک مختصری اولی یه مختصری از این کتاب بگم اعتیاد به الکل و مشروبات الکلی یک اعتیاد پیش است یعنی شخص رو حد نداره که مثلا بگیم من انقدر میخورم دیگه بیشتر نمیخوام. یا حالا یه لبی حاج به گیلاس داریم دیگه تکرار نمیشه. تو عروسی یا تو یک شبنشنی مبتذل بمانه نه این نزیر یه نخ سیگار میمونه کشید همانو کم کم شوق کازه و میل اکید میداد و از یه نخ سیگار میبینی تبدیل میشه به روزی دو پاکت سیگار حالا این که میخواست مثلا نصف گیلاس مثلا بخوره یا نصف استکان بخوره تبدیل میشه که روزی چند تا شیشه شراب بخوره اختلالات ذهنی و از دست دادن شغل و از دست دادن خانواده و ایجاد کودکان ناقص الخلقه و بدبختی‌های دیگه که به سر خودش میاد پس اعتیاد به الکل یک بیماری مزمن و پیشرونده است و غالباً شخص رو میکشه این مواد افیونی این بیماری عبارت از نوعی اشتغال ذهنی به الکل و اختلال در کنترل مصرف اونه مصرفش هم بیرویه میشه نشانه هاش چیه مصرف الکل به تنهایی در... یا در خفا داره دوم از یاد میبره گفت و شنید ها رو سوم به فعالیت ها و سرگرمی های صحیحی که قبلا با آنها احساس شادی و نشاط میکرد. مثل سل مثل احسان والدین مثل کارهای خوب اجتماعی که دست جمعی انجام میدن مثلا پس کن مشورت علمی مشاوره رفتار درمانی، مشاوره روانشناختی و درمان روان نامتعاده مشاوره مثلا ژنتیک، مشاوره تربیتی مشاوره اخلاقی از این مشاوره های مثبت مصبت قبلنها کیف میکرد و احساس شادی چون راهکار سعی یاد میگرف و انجام میده. خب حالا از اینا همه بدش میاد تصاحب فهم با با هرچی کار خوبه شروع میکنه علم مخالفت و حالت ستیزی حتی مومنو خودمهور خودبین به گونه لجبازی پیشه میکنه طاقت نداره استفاده کنه از عقل جمعی حاشیه ما بر این کتاب اینه که شخص الکلیزم طاقت نداره بر استفاده از عقل جمعی چرا چون خودش مست لایعقله بخی بیاد الان استفاده از عقل جمعی کنه خودمهوره خودبین قلبه احساسات بیجا به نوع خشونت بیجا یا شهوت بیجا هست همش میگه من من من یعنی چرت و و زیاد میشه و ذریبه قلبی شهوت بیجا و خشونت بیجا در رو پیدا میکنه چون خودش بیعقل فکر خوب متمرکز نداره فعلم ایمان هم که از کف دستش پرید خب به طریق اولا زدیت داره با عقل جمعی استفاده از عقل جمعی نمیکنه این هم یه حاشیه ما بر این قسمت پس دومین علامتش اولیش چی بود؟ مصرف الکل به تنهایی در خفا دومین علامت بیماری الکلیسم چیه؟ به قول و قراراش وفا نمی‌کنه. گفت و شنیدام که بودا یادش میونه. بود. بعد حاشیه‌مون هم گفتیم که استفاده از عقل جمعی نمی‌کنه به طریق اولا چون خودش فکر خوب متمرکز رو و عقل فعال کاروردی از دست داده. خود محور خودبین لج لجبازی شده. سومین علامتش به فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مفیدی که قبلا احساس شادی و نشاط می‌کرد، پایبند نیست. علاقه نشون نمیده. رو میاره به چیزهایی که نشاط آفرین نیست، بلکه ایجاد ترس و وحشت کاذب در جامعه می‌کنه. مثل عربدکشی، مثل چاقوکشی، مثل تیغ مکت بودی کشی، فهمید؟ ایجاد وحشت کاذب میکنه در محیط اجتماعی چه خانه و خانواده باشه چه فامیل اشکیله عش... باشه چه جامعه های بزرگتر کوچه و خیابون باشه مطلب چهارم با نزدیک شدن به زبان شراب شرابخواری تحریک پذیر میشه و بی قوار میشه عین کسی که معتاد به سیگاره در بدن می گرده دنبال یه نخ سیگار نیم سال یک سال میگه خب آقا یعنی که تو شعر مفته دوده. باز تو هم پول میدی هم جون میدی سیگار نکشی یا چپاق یا قلیون مثلا دیدی مومن اینجا فکر خوب متمرکز و از دست داده ها. یادش میره سلامتی شد سه یه چیزی زمان میگذاره یا پول خرج میکنه که آسیب بهش بیشتره حال از اعتیاد به دخانیات بدتر اعتیاد به مواد افیونیه باز از اعتیاد به مواد افیونی بدتر اعتیاد به روان برگردانه باز از همه اینا بدتر الکلیسم بودنه اعتیاد به مسکراته صاف بودیم؟ رضا این افراد وقتی زمان اینها میرسا بیقرار میشن هی با خودشون حرف میزنن هی بر میمیرن گویا همه چیزا رو پرت میکنه که الا مثلا این شیشه شرابشو یا این نرمه مثلا گردشو یا مثلا این نقصگاهشو مثلا پیدا کنه مخصوصاً اگر این الکل مسکننده کننده دم دستش نباشه دیگه پرخاشگره فحاش به هم ریزاننده نظر حالتاش اینجوری میشه یعنی بیقراری شدید مبتلا میشه توامه با لجام کسیختیه در بیان مطاله یعنی الفاظش خیلی رکیک میشه و بعد و به همه میگه یادش بگه این حافظه زشت پوشای رقیقه یکی دیگه از علائمش که مثلا پنجم الکل رو در جاهای غیر در منزل یا سر کارش قایم قله میکنه یا زیر اتومبیل اینا یعنی قچقچی هستم ممکنه مثلا مثلا مواز کنه یا الکل چند سال فکر میکنه مثلا چقدر نقشه میریزه چقدر نفرات استقام کجای کامیون برش بده کجا مثلا قاطی کنه تو لاستیک چی کار کنه زیر سندلی چی کار کنه از این خب بابا جون پنج دقیقه کار خوب فکر میکردی کار خوب از این سر میزن این چه خنگیه که بعضی افراد این ور این ور دنیا با مسکرات عقل خوبشون رو زایه میکنن احسابشون رو به هم میریزن و احساب دیگران رو هم به هم میریزن خب چه قلطیه عیز من میتونستی گلاب طبیعی به اضافه عرق بیدمشک طبیعی مشک طبیعی یا عرقش این هم گلاب طبیع یا گلبرگ گل محمدی خب مومن این دوتا رو قاطی کنی نسبت مساوی با اصل شیر کن بخور کف کن هم دنیات خوب تا میشه هم آخرت خوب تا چرا کفت و زرماری بخوری که همه چیز قاطی بشه این هم قابل از برای افرادی که تو دنیا هستن الکولیس به خودت رحم کن. می‌بینی قلب و شق بهتون رحم نمی‌کنه. لا اقل خودت به خودت رحم کن. بعضی افراد مؤمنا دارای مشکلات قانونی یا مشکلاتی در روابط فردی یا استخدامی یا در خانه و خانواده هستند. خب بابا جون، اگر مثلا سختی داری یا کمی درآمد داری یا مثلا از کارخونه اینا انداختنت بیرون خب تلاش بیشتر و مدیریت صیحتر کن حالا زمان بحرانیه مدیریت در بحران داشته باش لازم است که بری بزنی خودت به رگ بیاری و قرتیگری و اینها که بری رو معتاد کنی که همین مقدار که جونداری توانداری، پولداری، پسندازداری اینها رو همه رو زایه کنی بعد چیزای مطلوبی که داریم بحث گرمی خانه و خانواده روابط عمومی سعی بین افراد خانواده بین فامیل همسایه تو محیط کار و غیر کار حالا همه رفتارهای مثبتت رو و این روابط عمومی سالبت رو بگیریم مخدوش کن خب چرا این کار کن؟ خب بعضیا ها چون که مشکلاتی دارن این رو بحانه قرار میدن به اصطلاح عامیانه میگیم عذره بدتر از گناه به اصطلاح علم اخلاق و علم تفسیر میگیم اشکالات بنی اسرائیلی توجیهات واهی خب درست این مشکل رو داشتیم اما لازم نیست که حرام بخوری آیا با حرام خوردن مشکلت لفت میشه؟ آیا با اعتیاد به دخانیات و مواد افیونی، قرصهای روان، برگردان و مسکرات این عیب و نقصت برطرف میشه یا به عیب و نقصات افزوده میشه دیده اینا رو میگیم آزره بدتر از گناه با توجیهات وای از این توجیهات زیاد دارم حالا هر یک از این علایم و نشانهایی که گفتم توضیح دادم مؤمنا و از کتابم خوندم بعضی به صورت پیوسته یا دور ای گریبانگیر شخص الکلیسم میشه. باز چیزایی دیگه از معامنا اینا همه رو مطالعه کنید. مصرف افراتی و دراز مدت الکل که طرف میشه معتاد به الکل میشه الکلیسم سطح خونی برخی از این مواد شیمیایی رو کاهش یا افزایش میده، و باعث میل شدید بدن شخص به الکل برای بازسازی احساسات خوشایند یا اجتناب از احساسات منفی میشه عوامل اجتماعی داره عوامل فرنگی داره عوامل روانشناختی داره صنعت تبلیغات رسانعی که یک کم اینا هست و زیادم هست بعد چیزای دیگه معامل ها عوامل خطرساز کسانی که در کودکی یا نوجوانی یا جوانی معتاد میشن به الکل خطر در اینا بسیار زیاد و کشنده پس سن افراد در همه سنین بده در کودکی و نوجوانی و جوانی بدتر از هیست ژنتیکی ممکن آرایش ژنتیکی شما رو که باعث اختلالاتی در بالانس یک یا چند ماده شیمیایی در مغز شده خطر وابستگی به الکل رو افزایش بده اینا بحث‌های و دی ان ایو ها و, و بحث‌های صفات و جنها و اینها را بمونه یکی هم بحث جنسیت چه دختر چه پسر چه مرد چه زن ولی در مردان اعتیاده به الکل چیه بیشتر اینا طبق آماریه که تو ایالات متحده ای آمریکا و جوامع غربی در طی سی سال گذشته وقوع اعتیاد الکلی در زنان افزایش پیدا کرده وقوع اعتیاد الکلی در زنان افزایش پیدا کرده در خود جوامع غربی ها تو جوامع غیر غربی هم چه مسلمون چه غیر مسلمون با دسیسه دشمنان این هم چی شده مؤمنا زیاد شده و عناد دارن ها و عناد دارن بر ترویج فساد در سطح جوامع حالا یکی از ابزار فساد و شرارت چیه ترویج میگساری و الکل های مسکننده یکی دیگه از عوامل خطرساز سابقه خانوادگی خطر اعتیاد به الکل توسط بعضی از اعضای خانواده حالا یکی از والدن یا هر دو شد ابتلاع فرزندان به الکل مست کننده بالا میره یکی دیگه از عوامل اختلالات عاطفیه مثل افسردگی متوسط یا شدید مثل استراب متوسط یا شدید که دل هورست. اینا خطر سوء مصرف الکل میره بالا مخصوصا وقتی که شخص خدای یگانه و قیامت یادش بره و خیال کنه در آزادی مطلقه که کاپیتالیست مروج همینه برای اینکه افراد رو به تور بندازه میاد ترویج آزادی مطلق میکنه حالا شما ببینید هر فردی از هر حیث آزادیش مطلق باشه چه قانون شیر تو شیری میشه اصلا هیچ نظم واقعی ها هیچ حرمتی نگهدارن پیش نمیاد حریم شکنی و حریم شکنان در جوامع بشری زیاد میشه و اگر این هوشیاری لازم در داخل و خارج کشور رعایت بشه تمام این ابزارهایی که دشمن کار میبره از قاچاق انسان قاچاق اصله، قاچاق مواد افیونی قاچاق انواع مسکرات در سطح وسیع اینا هیچ تأثیر منفی در جامعه هوشیار بیدار بلایی ند بله اگر آدم جاهل شد یعنی بیعقلانه عمل کرد قافل شد از اصول ارزشی فریب دشمن حیلگر میخوره و اسباب فسادی که او فراهم میکنه به کار میگیره هم خودشو فاسد میکنه هم دیگران رو به فساد میکشه اختلالات آطافی بحث افسردگی بحث استراب درمان داره تو روانشناسی بالینی تو علوم تربیتی تو بحث تخصصی مغز و تو بحث تخصصی اعصاب و روان درمان داره لازم نیست که آدم بره. معتاد بشه به مواد افیونی یا قرصای روان برگردان یا بره الکلیسم بشه که قوز بالا قوز بشه بدتر از بدتر بشه نه همه درمان داره چه دارو شیمیهی چه دارو گیاهی چه تقبل معصومی نه همه درمان داره علت این که شخص دوچار اختلالات عاطفی مثلا استراب شدید افسردگی شدید و مانندوهه بعد پیش علکی میکنه خوددرمانی باز اینام یه غلط اضافی دیگه پیش علکی و خوددرمانی بعد دوست نابابم هی القاعت شیطانی میکنه آتش مرکه حالا این شخص چیکار میکنه میاد برای سرکوب موقت کشمکش های روانی رو روانی خودش رو میاد پیش خودش پیش فرض میکنه با القاءات شیطانی دوست ناباب و رو میاد حالا برای خودش گزینش میکنه انتخاب میکنه مصرف الکل کننده رو اینم بدبختی چرا چون پیش فرضش کاذب بود علمی نبود دوم گزینشش هم غلط بود سوم خوددرمانیش هم که غلط سه تا اشتباه مرتکب میشه به فساد خودش و جامعهش دامن میسن این هم حاشیه ما بر این کتاب بزرگ برای باز مطالعه کنیم مومنا اللهم صلی علی محمد محمد محمد